دوستای خوبم خوشحالم که امروز هم با ما همراه هستین به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز میکای نبی رو بررسی می‌کنیم همونطور که یادتون میاد بزرگترین بخش در کتاب مقدس به بیا اختصاص یافته اونها پیام‌های بسیار مهمی برای مردم روزگار خودشون و همینطور برای امروز ما دارن یکی از این انبیاء مهم میکاه هست. ما امروز میبینیم که چرا میکاه این همه اهمیت داره. گوش کنید و از خداوند بخواید که به شما نشون بده که اون میخواد از این نبی پیر که مدتها قبل زندگی میکرد چیاد بگیرید. با هم به معلممون گوش میکنیم. دیدیم که میکا یکی از بزرگترین واعزین در بین انبیاء بود. جا داره که اهمیت میکا نبی رو درک کنید. میکا در سطح اشعیا یا هر کدام از انبیای دیگر هست. میکا نبی مهمی می هست. مردان حکیم غالباً از او نقل قول می کنند. همینطور که اشاره کردیم در متا دو پنج تا شش از او نقل قول شده. همچنین ایسا در متا ده از او نقل قول کرده. بزرگان زمان ارمیا با نقل نبوت میکا زندگی ارمیا رو نجات دادند ارمیه در مورد ویرانی اورشلیم موعظه میکرد و مردم نزدیک بود او را بکشند اما برخی از مردان حکیم جمع شدند و گفتند این مرد رو نکشید چون در زمان حزقیا پادشاه میکا نبی هم همون چیز رو نبوت کرده و حزقیا او رو محکوم به مرگ نکرده حزقیا توبه کرده و مردم به سوی خدا بازگشت کردند و خدا خرابی رو که میکا نبوت کرده بود بر سر آنها نیاورده. نقل معیزه های میکا توسط مردان حکیم عملا زندگی ارمیا رو نجات داد. در جلسه اول دیدیم که کتاب میکا هفت باب داره و از سه موعظه تشکیل شده. اولین موعظه که در دو باب اول کتاب هست، معیزه میکا خطاب به همه مردم بود. دومین موعظه که در باب سه آیه یک شروع میشه و تا آیه 15 باب 5 دام پیدا میکنه، موعظه میکا خطاب به رهبران قوم هست. میکا هم در پایتخت پادشاهی شمال و هم در پایتخت پادشاهی جنوب معهزه می کرد. او خطاب به رهبران قوم خدا مربوط به حکومت بود. میکا به این واقعیت اهمیت می داد که حکومت ها از طرف خدا تعیین می خدا می که قومش در آرامش زندگی کنند. برای اینکه قوم خدا بتونن نیکویی هایی رو که خدا می تجربه کنن، حکومت باید چیزی باشه که مورد نظر خدا بوده. میکا اعتقاد داشته حکومت های تعین شده از طرف خدا باید سه بود داشته باشند. اول بود روحانی حکومت که مسئولیت کاهنین هست که این بود رو در حکومت با تعلیم حقایق روحانی جا بندازند و خود نمونه این حقیقت روحانی باشند که تعلیم میدادند. بعد بود اخلاقی حکومت بود. این مسئولیت انبیا بود که این بود رو با نصیحت کردن مردم برای اطاعت از قوانین خدا در حکومت عملی کنند. همینطور بود اجتماعی حکومت هم بود. این وظیفه رهبران اجتماعی بود که این بود از حکومت رو با اعمال قانون خدا از کلام خدا جا بندازند میکا ادعا میکرد که رهبران قوم خدا در تمامی سطوح فاسد هستند. تاکید معزه میکا متوجه رهبران قوم خدا در هر سطح حکومتی بود. پیام میکا خطاب به رهبران حکومت ما را آماده نبوت مسیحایی او میکنه میتونیم معزه سوم میکار رو موعظه مثبت بدونیم همونطور که بارها گفتم تمامی انبیایی که اسارت آشور و بابل و مجازات و افسردگی ناشی از اونها رو نبوت کرده بودن نبوتهاشون رو با لحنی مثبت خاتمه دادن اونها پیامشون به اسارت ختم نشده. همه انبیای بزرگ با پیام مثبت امید نبوتهاشون رو خاتمه دادن اگر انبیا خطاب به پادشاهی جنوب موعظه کردن، انتهای پیام اونها مربوط به بازگشت از اسارت بابل بعد از هفتاد سال میشد اگر انبیا خطاب به پادشاهی شمال موعظه می‌کردند انتهای پیام اونها ما رو به زمانهای آخر متوجه میکنه. تمامی این انبیا از پراکندگی قوم خدا در سراسر دنیا و بازگشت از اون پراکندگی خبر دادند بازگشت جغرافیایی به سرزمین اسرائیل که ما در دوره خودمون شاهد اون بودیم و بازگشت روحانی اسرائیل به طرف خدا که هنوز اون رو ندیدیم. اما همونطور که تحقق بازگشت جغرافیایی رو دیدیم که مو به مو اجرا شده، میتونیم به این نتیجه برسیم که بازگشت روحانی هم به همون صورت تحقق خواهد یافت. در سومین موعظه میکا او در مورد نجات از پراکندگی صحبت میکنه. در مقرد میکا همینطور نبوت مسیحایی بزرگ خودش رو هم به ما میده. در این نبوت مسیحایی میکا هنوز هم به سه سطح از رهبران حکومتی فکر میکنه. شاهزادگان که نماد رهبران اجتماعی هستند، کاهنین که رهبران روحانی بودند و انبیا که رهبران اخلاقی قوم خدا بودند. پیام میکا این بود که رهبران اونها در هر سبود رهبری شکست خوردهاند. دومین معزه میکا مربوط به شکست حکومت هست که زمینه ای فراهم می کنه که در اون نبوت مسیح های بزرگ او رو می شنویم. میکا آمدن مسیح رو در باب پنجایی دو به تصویر می کشه. به گفته میکا، مسیح حاکم بینقص خواهد بود. مسیح با قدرت خداوند حکومت خواهد کرد. مسیح قوم خودش رو در شعن نام خداوند شبانی خواهد کرد. مسیح به عنوان شبان اعظم حکمرانی خواهد کرد. چیزی که میکا عنوان میکنه اینه. این اراده خدا هست که نمایندگی حکومت رو به انسان بده. اما وقتی انسانان طور که باید نمیتونه حکومت کنه، روزی خدا خواهد گفت دیگه نمیتونم مسئولیت و حکومت رو به انسان بسپارم. فرمان حکومت رو به پسرم خواهم داد. وقتی پسرم بیاید، او بر حسب اراده من حکومت خواهد کرد. او در شعن نام من یهو و خدا حکمرانی خواهد کرد. وقتی پسرم حکومت کنه، خواهید فهمید که وقتی من حکومت رو تأسیس می کردم، قلب من چی بوده؟ وقتی پسرم حکومت کنه، حکومت او فاسد نخواهد بود. اون حکومتی زیبا خواهد بود. تمام اینها سؤالی رو پیش میاره. کی عیسی بر پادشاهی کامل حکومت خواهد کرد؟ این به ما کمک می کنه که بفهمیم چرا رسولان مرتبا از خدا می پرسیدن آیا الان پادشاهی اسرائیل رو بنا خواهی کرد؟ رسولان عیسی را به عنوان یک عامل بلقوه و رهبر سیاسی میدیدند که به فاتحین رومی قلبه خواهد کرد. بعضی از این محققین بر این باورند که یهودیان به این دلیل به دنبال عیسی رفتند که اونها ایمان داشتند عیسی رهبر سیاسی خواهد شد که به حکومت رومیان خاتمه خواهد داد و یهودیان میخواستند که در این حکومت سیاسی جدید رهبر باشند. یکی از رسولان به نام شمعون قیور بود. که اگرچه زیر سلطه اشغالگران رومی زندگی می کردند از جنبش شپه بود که به مقاومت دائم علیه رومیان معتقد بود. پروفسور ویلیام بارکلی از اسکاتلند اعتقاد داشت که چهار تن از دوازده رسول به عنوان شاگردان ایسا این انگیزه سیاسی رو داشتند. به خاطر بخشایی از کتاب مقدس مثل اونهایی که در کتاب میکا هست و رسولان که عهد قدیم رو میدونستند، احساس می که ایسای مسیح باید یک رهبر سیاسی باشه که بر یک پادشاهی کامل حکومت کنه. چیزی که اونها نمی دیدن و چیزی که شاید شما هم وقتی در ابتدا کارو می خونید نتونید ببینید چیزیه که بعضیها به اون پرانتز بزرگ میگن. عیسی برای رسولان کاملا تصریح کرد که آمدن او تیه دو مرحله خواهد بود. ما از ظهور اولیه و ثانوی عیسی صحبت میکنیم در لوقا 4:18 عیسی از اشعیا 61 متنی رو خوند و به ما چیزی رو داد که محققین به اون بیانیه ناصره میگن عیسی از قول اشعیا گفت روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی نداکنم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. ایسا در بیانیش توضیح داد که میخواد چیکار کنه؟ او میخواست به کوران بینایی و اسیران آزادی و به شکستگان شفا بده. وقتی لوقا 4 رو با اشعایه 61 مقایسه میکنید، ملاحظه میکنید که ایسا در وسط آیه ایستاد و تومار رو به دست خادم کنیسه سپرد. چون آیه در ادامه میگه و از یوم انتقام خدای ما ندان مایم. ایسا اون بخش از آیه رو نخوند چون در حضور اولیاش نیومده بود تا یوم انتقام خدا رو اعلام کنه. آیات مشابهی مثل اشعایه 61 در مزمور دو و در نبوتهای عهد قدیم وجود داره که هر دو آمدن ایسا رو در یک آیه به تصویر می شما باید در وسط بعضی از این آیه ها که هر دو واقعه رو شرح توقف کنید. ایسا بار اول به عنوان خادمی که رنج کشید آمد. ماموریت او این بود که به خاطر گناهان دنیا بر صلیب بمیره، از مردگان قیام کنه و روح القدس رو بفرسته تا کلیسا بتونه متولد بشه و در این دنیا به وظیفه‌اش عمل کنه. همونطور که قبلا اشاره کردم، بعضی از محققین دوره کلیسا رو پرانتز بزرگ می نامند. همین الان امروز عیسی مسیح در حال ساختن کلیساش هست. وقتی عیسی ساختن کلیساش رو به پایان ببره، دوباره باز خواهد گشت. تمامی این انبیا این مطلب رو به ما میگن عیسی مسیح با قدرتی عظیم و جلال خواهد آمد دفعه بعد که عیسی بیاید کسی رو یارای مقابله کردن با او نخواهد بود وقتی بار دوم بیاد به عنوان خادم رنج کشیده نخواهد آمد اون نخواهد آمد تا گونه دیگرش رو برگردونه تا سیلی دیگری به او بزنند در مزمور دوم وقتی او دوباره میاد چنان خواهد بود که گویی قوم های روی زمین مانند ظرف چینی زیبایی خواهند بود ایسا اصایی آهنین در دست داره و قوم های روی زمین رو با اون عصا خورد خواهد کرد وقتی دوباره بیاد برای حکمرانی و حکومت خواهد آمد همونطور که قبلا گفتم نظریات متفاوتی در مورد پادشاهی آینده عیسی وجود داره آیا اون یک دوره هزار ساله خواهد بود؟ آیا مسیح به مدت هزار سال بر روی زمین یک پادشاهی حقیقی خواهد داشت؟ اگر فکر میکنین قبل از تأسیس اون پادشاهی خواهد آمد شما معتقد به پیش از هزاره هستید. اگر معتقد هستید که او بعد از تأسیس پادشاهی خواهد آمد، معتقد به نظریه بعد از هزاره هستید. اگر فکر میکنید که پادشاهی هزار ساله پادشاهی حقیقی نیست و پادشاهی روحانی هست و یا چیزی تمثیلی هست، اون وقت شما معتقد به نظریه هزاره هستید نظریات متفاوت زیادی در مورد اون پادشاهی هست حال همه این انبیا به ما میگن که وقتی عیسی دوباره برگرده او فرمانروای مطلق پادشاهی خودش خواهد بود نظریه ای هست که میگه بیان میکا از آمدن عیسی در مورد آمدن سانویه او هست چون در آمدن سانویه او هست که خدا به قوم خود خواهد گفت من به شما فرصت و حکومت دادم اما در هر سه ساعت این حکومت فساد بود شما رهبران اجتماعی به خاطر پاداش داوری کردید رهبران روحانی با دستمز تعلیم دادند انبیا به خاطر پول پیشگویی کردند حکومت خدا به خاطر گناه اون رهبران حکومتی کار نمیکنه. بنابراین روزی خواهد آمد که به گفته این انبیا وقتی خدا مسئولیت حکومت رو دوباره به دست میگیره خدا بار دیگر حکومت رو به انسان واگذار نخواهد کرد. چون این بار حکومت رو به پسر خودش واگذار میکنه و حکومت پسر او پایانی نخواهد داشت. پسر خدا به عنوان شاه شاهان و رب العرباب حکومت خواهد کرد. این پیامی هست که میکا موعظه کرده. متنی هست که در اون میکا وقتی محل تولد مسیح رو پیشبینی می کنه، نبوت مسیح های بزرگش رو به ما میده، میکا هم همصدا با دیگر بیا بازگشت از پراکندگی و احیای مجدد را پیشگویی کرد و پیام امید به ما داد این بخش از نبوت میکا یقینا روزهای آخر را رو توصیف میکنه و در ایام آخر کوه خانه خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گردید و قومها بر آن روان خواهند شد و امت‌های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا تاریخ‌های خیش را به ما تعلیم دهد و به راه های وی سلوک نماییم زیرا که شریعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد واضحه که این هنوز اتفاق نیفتاده اما این نبوتی هست که میکا وعده داده همه ما میتونیم از روح القدس بخواهیم که به ما نشون بده معنی واقعی نبوت میکا چیه بهنا گفته ی میکا زمانی خواهد بود که صلحی عظیم و پایدار خواهد بود. میکا می نویسه و او در میان قومهای بسیار داوری خواهد نمود و امت‌های های عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد. و ایشان شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای ارها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آمود. و هر کس زیر موه خود و زیر انجیر خیش خواهد نشست و ترسانندهی نخواهد بود زیرا که دهان یهوه سبایوت تکلم نموده است. بخش اول این متن نقل قول مستقیمی از اشعیا هست و بعد میکا فراتر از این نقل قول میره و درباره ایام آخر صحبت میکنه. به این دلیل که نگاه کردن به خاورمیانه میانه و اسرائیل مهیج هست. یک معلم کتاب مقدس رو میشناسم که با مردم در مورد آمدن به سرزمین مقدس و رفتن به خانه شوخی میکنه و میخونه امروز من جایی قدم نهادم که عیسی قدم نهاده. دیدگاه او اینه که مسیح در قلب منه و حالا که مسیح در قلب منه و اینقدر به من نزدیکه پس رفتن به سرزمین مقدس منو نزدیک تر از این نمیکنه بر حال یک بار چهل نفر که او براشون کتاب مقدس رو درس میداد از او خواستند که اونها رو به سرزمین مقدس ببره. چونن میتونست برای اونها مثل یک گردش علمی برای کلاس کتاب مقدس باشه. او تصمیم گرفت بره. وقتی به اونجا رسید متوجه شد که اونجا واقعا سرزمین مقدسیه. یک چیز خاصی در مورد شهر اورشلیم وجود داره. یکی از چیزهایی که اون شهر رو خاص میکنه البته اینه که به گذشته نگاه کنیم و چیزهایی که در اون شهر اتفاق افتاده درک کنیم. مطلب دیگری که اون بخش از جهان رو مهیج میکنه اینه که از نبوتها به جلو نگاه کنیم و ببینیم که هنوز نبوت‌های های هست که قرار هست اونجا تحقق پیدا کنه. نبوت عهد قدیم و نوشته انبیا و مکاشفات خارق‌العاده اونها در رابطه با انتهای تاریخ بشر باید شهر اورشلیم رو برای بینندگانش و برای همه ما جذاب کنه و چشمانمون رو به سوی سرزمین مقدس و خاورمیانه متوجه کنه. وقتی که میکا در مورد حکومت، موعزه مثبتش رو به ما میده، او همینطور با مکاشفه اصارت بابل و بازگشت از این اصارت رو هم پیشگویی میکنه. نیکا می, میکا می الان چرا فریاد برمی‌آوری؟ آیا در تو پادشاهی نیست؟ و آیا تو نابود شده است که درد تو را مثل زنی که میزایت گرفته است؟ ای دختر صحیون مثل زنی که میزایت درد زه کشیده و حمل نما. زیرا که الان از شهر بیرون رفته، در صحرا خواهی نشست و به بابل رفته در آنجا رهایی خواهی یافت و در آنجا خداوند تو را از دست دشمنانت رهایی خواهد داد در جلسه قبلی از کتاب میکا دیدیم که وقتی میکا این نبوت تولد مسیح را به ما میده به ما میگه که مسیح کجا به دنیا خواهد آمد و آمدن ثانویه مسیح را هم پیشگویی میکنه توسط مکاشفه نبوتی میکا پراکندگی قوم خدا و همچنین رسیدن دست انتقام خدا بر کسانی که قوم خدا را اسیر کردند و به اونها آزار رسوندن رو پیشگویی میکنه. میکا همینطور حجوم هجوم آشوری ها رو هم پیشگویی میکنه. یادتونه وقتی آشوری ها به یهودا حمله کردند، اونها از دروازه های اورشلیم بازگشتند. اشعیا این لحظه باشکوه رو نبوت کرده بود. میکا در این مورد صحبت میکنه و توضیح میده که چطور نبوت ارمیا قوم یهودا رو از آشوریان رهایی میده. به هر حال میکا در مورد اسارت بابل هم صحبت میکنه و شرح میده اون تجربه اسارت میتونه گناه بت قوم یهودا رو شفا بده. کلام خدا میگه و جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود که فالگیران دیگر در تو یافت نشوند و بت‌های تراشیده و تمسالهای تو را از میانت نابود خواهم ساخت که بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننمایی. وقتی سومین موعظه میکا را بررسی میکنیم متوجه میشیم که میکا این موعظه مثبتش رو در بابهای شش و هفت داره میده. اینجا میکا در اوج سخنوری خودش هست. میکا به طور تمثیلی یک مورد مخاسمه رو عنوان میکنه که بین خدا و قوم خدا هست. او اینطور میگه: به دعوی خداوند علیه اسرائیل گوش فرادهید. ای خداوند برخیز و دعوی خود را ده و بگذار که کوه و تپه ها آنچه را که میگویی بشنوند ای ها ای اساس های جاودانی زمین به دعوی خداوند گوش فرادهید خداوند علیه قوم خود شکایت دارد و او اسرائیل را متهم میسازد خداوند میفرماید ای قوم من چه کردم که از من خسته و روگردان گردان شده ای جواب دهید من شما را از مصر بیرون آوردم از بندگی نجاتتان دادم و موسا حارون و مریم را فرستادم تا شما را هدایت کنند. ای قوم من، به یاد آورید چگونه، بالاق، پادشاه معاب سعی کرد به وسیله نفرین بلعام پسر بعور شما را نابود کند، اما من او را وادار کردم به جای لعنت برای شما دعای خیر کند. آنچرا که از شتیم تا جلجال اتفاق افتاد، به خاطر آورید و بدانید که این همه را برای خیر و خوبی شما کردم. متنی که می اینجا عنوان میکنه بسیار فسیح هست به طور خلاصه میکا میگه بیایید با خدا مخاسمه کنیم ببینید میکا در مورد حکومت و وظایف حکومت بسیار نگران هست بنابراین او این طور میکنه سالن دادگاه بزرگی رو به تصویر میکشه جایی که خدا کوها و تپه ها رو به عنوان شاهد میاره شما هم روزی در محکمه ای در مقابل خدا قرار خواهید گرفت خدا شما رو با چنین سوالاتی به چالش خواهد کشید آیا هیچ چیز خوبی که من برای تو انجام داده باشم به خاطر نمی آوری؟ پس چرا از من رو برگرداندی؟ حالا در مد میکا این سوالات رو عنوان میکنه. وقتی برای عبادت خداوند، خدای قادر مطلق میاییم، چه چیز به حضور او بیاوریم؟ آیا اگر بهترین ها را برای او قربانی کنیم، او از ما راضی خواهد شد؟ اگر هزاران گوسفند و دهها هزار نهر پر از روغن زیتون به او تقدیم کنیم، او از ما خوشنود خواهد گردید؟ آیا اگر فرزند ارشد خود را برای گناه خود قربانی کنیم او گناه ما را خواهد بخشید خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواهد آنچه او از ما می خواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را بجا وریم. زمینه ای که میکا اون اظهارات بزرگ رو در اون به ما میده اینه سالن دادگاه بزرگی رو بین خدا و قومش به تصویر میکشه. وقتی خدا اتهامات خودش رو بر علیه قومش عنوان میکنه این سوال پیش میاد حالا چیکار میتونید برای راضی کردن خدا بکنید دوباره باز هم کتاب مقدس پیغام ثابتی رو عنوان میکنه و اون پیغام فیض هست. هیچ کاری نیست که من و شما بتونیم انجام بدیم که کفاره گناهانمون باشه هیچ کاری نیست که من و شما انجام بدیم تا اون رو به دست بیاریم کسب کنیم یا لیاقتش رو پیدا کنیم که خدا ما رو ببخشه اگر چنین چیزی امکان داشت، اون وقت کسانی مثل داوود وقتی گناه کردن میتونستن تمامی گلشون رو برای قربانی به خیمه پرستش یا معبد سلیمان ببرند و برای گناهانشون قربانی کنند. هر کسی که بصیرت عمیق روحانی مثل بصیرت داوود داره میدونه که وقتی خدا اون سیستم قربانی و هدایا رو ایجاد کرد چه قصدی داشت. خدا واقعا چی میخواست؟ بنا به گفته داوود، اون هدایا و قربانی ها سمبولی از روحی شکسته و قلبی توبه کار بودند حالا وقتی یک گناهکار این رو تجربه میکنه اون موقع وقتی اون هدایا و قربانی ها به عنوان اعتراف و توبه گناهکار باشه خدا از اون قربانی ها خشنود میشه میکا هم همون چیز رو میگه چیزی که میکا به ما میگه دقیقا اینه نهرهای روغن زیتون نمیتونه خدا رو خشنود کنه و هزاران هزار از این گوساله ها و قوچ ها خدا رو راضی نمیکنن چیزی که خدا واقعاً میخواد اینه که قلباً با او صادق باشید. چیزی که او میخواد پارسایی، محبت، فروتنی و پرهیزکاریه. مثل آموس و بعضی از انبیاء دیگه، میکا هم در مفهوم پارسایی بسیار تاکید میکنه و این چیزی که او مرتباً در این بخش از کتاب مقدس شرح میده. در معزه سوم میکا، جملاتی از میکا رو داریم که عیسی در متا ده اونها رو نقل کرده. ایسا وقتی داشت میگفت به هیچ کس اعتماد نکن نه به بهترین دوستت و نه حتی به همسرت زیرا در این روزگار پسر به پدر اهانت می کند دختر با مادرش مخالفت میورزد و عروس با مادر شوهرش دشمنی می کند آری اهل خانه شخص دشمنان او می باشن از میکا نقل قول می کرد در اون متن میکا ادامه میده و میگه ای دشمنان به ما نخندید زیرا اگر چه به زمین بیفتیم باز برخواهیم خواست اگرچه در تاریکی باشیم خود خداوند روشنایی ما خواهد بود وقتی خداوند ما را تنبیه کنه تحمل خواهیم کرد زیرا نسبت به او گناه کرده ایم سرانجام او در برابر دشمنان از ما حمایت کرده ایشان را به سبب تمامی بدیهایی که به ما روا داشتند مجازات خواهد کرد خداوند ما را از تاریکی بیرون آورده در روشنایی قرار خواهد داد و ما شاهد عمل نجات بخش او خواهیم بود آنگاه دشمنانمان خواهند دید که خداوند پشتیبان ماست و از اینکه به ما تعنه زده میگفتید خدای شما کجاست شرمنده خواهید شد آنگاه با چشمان خود خواهیم دید که ایشان مثل گل کوچه ها پایمال می, می بینید چطور همه این انبیا هاشون رو با پیغامی از امید به پایان بردن وقتی یونس در شکم ماهی بود او گفت نجات از خداوند است وقتی یونس این رو گفت خدا او را از شکم ماهی نجات داد همه این انبیا این پیغام امید رو اعلام میکنن وقتی قوم یهودا اسارت وحشتناک بابل رو تجربه میکردند کردند همونطور که ارمیا در قار کوچک خودش نشسته و مراسی رو می مینویسه همه ای انبیا این مکاشفه رو داشتند خدا از محبت به ما دست نمیکشه بنابراین ما ایمان داریم که نجات از جانب خداست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 مجازات خواهد کرد خداوند ما را از تاریکی بیرون آورده در روشنایی قرار خواهد داد و ما شاهد عمل نجات بخش او خواهیم بود در ایام عهد قدیم این جمله مرتبا به کار می رفت. دیدن نیکویی انگیزه امیدی که همه ما در قلب هامون داریم اینه که اعتقاد داریم روزی برای ما چیزی نیکو اتفاق خواهد افتاد در مضمون 34 داوود معزه بزرگی در مورد امید داره او می که کیستان شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می‌دارد تا نیکویی را ببیند. خب این جمله رو در چنین موعظه هایی می‌بینیم. دیدن نیکویی چیزی بود که مردم به خاطرش زندگی می‌کردند. این چیزی که میکا در باب 6، آیه 9 تا باب 7، آیه ده در موعظه سومش موعظه مثبت امید گفته. او اینطور موعظه کرده. من نیکویی او را خواهم دید. این موعظه میکا هم. با مکاشفه نبوتی خاتمه پیدا میکنه میکا موعظه میکنه در ایام آخر در آن روز از آشور و از شهرهای مصر و از مصر تا نهر فرات و از دریا تا دریا و از کوه تا کوه نزد تو خواهند آمد و زمین به سبب ساکنانش به جهت نتیجه اعمالشان ویران خواهد شد قوم خود را به اسای خیش شبانی کن و گوسفندان میراث خود را که در جنگل و در میان کرمل به تنهایی ساکن می باشند. ایشان مثل ایام سابق در باشان و جلعات بچرند. مثل ایامی که از مصر بیرون آمدی کارهای عجیب به اونشان خواهم داد. اینجا باز هم از اون مکاشفات نبوتی می بینید که هنوز تحقق نیافته. اینجا باز هم میگه که اورشلیم محلی خواهد شد که از آنجا مسیح بر تمامی مردم دنیا حکومت خواهد کرد. بعد از اینکه بیکفایتی ما رو در حکومت نشون میده، دعوت از مسیحی که میکا آمدنش رو پیشگویی کرده اینه. قوم خود را به اسایخ شبانی کن و گوسفندان میراث خود را که در جنگل و در میان کرمل به تنهایی ساکن میباشند، ایشان مثل ایام سابق در باشان و جلعات بچرند. میکا نبوت میکنه که تمامی دنیا برای زیارت اورشلیم خواهند آمد و خواهند دید که اورشلیم حقیقتا شهری مقدس شده در اسرائیل امروزی منبع اصلی درآمد مرکبات هست و بعد از اون صنعت توریزم در دومین مرحله قرار داره میکانه با بت میکنه که تمامی مردم دنیا برای زیارت اورشلیم خواهند آمد این به انجام رسیده اگر امروز از اسرائیل دیدن کنید مردمی از هر قوم و نژات رو از سراسر دنیا خواهید دید که برای دیدن شهر مقدس اومدن صنعت توریسم در اسرائیل امروزی تحقق نبوت میکا است. به هر چیزهای دیگری نیز در آینده اتفاق خواهد افتاد. در پایان کتاب میکا او به ما بخش دیگری از معزش را میده و نشون میده که چقدر از شخصیت خدا آگاهی داره او میگه کیست خدایی مثل تو که اسیان را میآورزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در میگذرد. او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا رحمت را دوست میدارد. او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود و اسیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به های دریا خواهی انداخت. امانت را برای یعقوب و رعفت را برای ابراهیم به جا خواهی آورد چنان که در ایام سلف برای پدران ما قسم خوردی. باز هم میبینیدین انبیا، علا رقم تمام نبوتهای تاریکی و عذاب و آتش و گوگرد و داوری هنوز هم در هاشون از محبت خدا، از رحمت و دلسوزی خدا صحبت میکنه. کیست خدایی مثل تو که اسیان را میآمرزد و از تقصیر بقیه میراث خیش در میگذرد؟ او خشم خود را تا به عبد نگاه نمی دارد، زیرا رحمت را دوست میدارد. دارد. خدایی که میکا موعظه میکنه خدای شفقت، رحمت و محبت است. میکا هم مانند دیگر انبیا خدایی رو اعلام میکنه که بخشنده وفادار و پر از فیض و ثابت قدم هست و محبتی بی قید و شرط و پایان ناپذیر داره میکا تاکید میکنه که ما نمیتونیم محبت خدا رو با کارهای مثبت کسب کنیم و نمیتونیم محبت خدا رو با اعمال منفی خود از دست بدیم. خدایی که میکا در موعظهاش تعریف میکنه منبع کلمه فیض هست فیض یعنی لطف و برکت خدا که ما نمیتونیم با اعمال مثبت به دست بیاریم. به این دلیل هست که فیض خدا مژده نیکویی هست اما این تنها نیمی از کلمه فیض هست نیمه دیگر معنی شینه اگرچه شما نمیتونید فیز خدا را با اعمال مثبت به دست بیارید همینطور هم نمیتونید با اعمال منفی فیض او را از دست بدید این چیزیه که میکا در این برش کوچک از معزش در انتهای باب هفت میگه انتهای معزه میکا در راستای معزه دیگر انبیا هست و در راستای دیگر موعظه هاش در کتاب میکا هست. اگر پیام انبیایی رو که از اشعیا تا میکا بررسی کردیم به خوبی درک کرده باشیم پیام امیدی هست که بر مبنای محبت و فیض خدا عنوان شده نه تنها در معزه دوم میکا گفته شده که مسیح از کجا خواهد آمد بلکه گفته شده دست غضب خداوند بر کسانی خواهد آمد که قوم اسرائیل رو ذلیل کردند و به اسیری بردن بر اساس نبوت‌های پویای میکا روزی خدا حکومت را از دست انسان خواهد گرفت و خودش شخصا عهدهدار حکومت خواهد شد. اون موقع او با پارسایی از اورشلیم به طور کامل حکمرانی خواهد کرد. کاربرد عملی این کتاب کوچک حیرت انگیز چیه؟ مایلم که بر فیض و محبت خدا تمرکز کنیم. اما این فیض و محبت رو به همراه داوری او ملاحظه کنید. اگر تاکنون هدیه ی فیض او رو دریافت نکردید همون فیضی که با کارهای خوب نمیتونید کسب کنید و به هیچ وجه نمیتونید اون رو به دست بیارید و همونطور نمیتونید وقتی اون رو دریافت کردید با هیچ عمل منفی اون را از دست بدید امروز وقتشه که اون هدیه رو دریافت کنید خدای حقیقی و متعال رو صدا کنید ما به این دعا میگیم امروز از او فیض و رحمتش رو بطلبید و او به شما کمک خواهد کرد که در راه‌های عدالت او گام بردارید. عزیزان، خدا فیزش رو در طول قرنها نثار کرده تا به من و شما برسه. میکا آمدن بزرگترین هدیه فیض، عیسی موعود، عیسی مسیح رو پیشگویی کرده. هدیه فیض در دسترس هست و باید با همه در میون گذاشته بشه. فیز او رو دریافت کنید و امروز اون رو به کسی دیگری برسونید. ترتیبی بدید که جلسی بعد با ما همراه باشید. شما رو تشویق می کنم که دوستی رو دعوت کنید که در ادامه بررسی انبیای کوچک با ما همراه باشه.